استاد استودیو رادیو البورج یکی از هنرمندان هموطن ما از کانادا به اهواز تشریف آوردند سرکار خانم پروانه و محبت کردند به استودیو رادیو البورج آمدند ما ضمن سلام و صبح خیر حضور ایشان ابتدا از ایشون می‌خوایم که یه سلام علیکم با شما عزیزان شنونده داشته باشه با سلام خدمت همه ایرانیان عزیز شهر آغوز امیدونم که خوب و خوش باشین و معفق چون معفقت تمام ایرانیان آرزوی من است و من از بنکوور یه دو روزی از اومدم و دوستان ازم خواستن که به راژیو بیام جایی وسیع خوشبختی است که در کنار شما باشم من به شما خوش آمد میگرم به شهر آهوز در دانمارک امیدوارم در این مدتی اقامتی خلیش. که دارین به شما خوش بگذاره خلیش. قبل از این که شعرتون رو محبت کنین بخونین خواستم از شما سآل کنم که چند وقت فعالیت هنری در کانادا داری؟ اصلش تقریبا شیش سال پیش استاد پیشت رکندین تاج بخش از ایران به ونکوبر تشریف ها بردن و ایشون معلم ویولون و آواز بودن که من با هاشون آواز تمرین کردم و ایشون خیلی بیشتر از من شوق داشتن و منو تشفیق میکردن ولی خود من زیاد علاقه به خانندگی نداشتم تا این که ایشون قبل از این که به بی بیماری مبتلا شدن و قبل از این که به ایران تشکیف ببرن یک سرودی بود که از من خواستن که این سرود رو براشون زنده نگه داریم چون خیلی علاقه داشتن به این سرود و که قبلا فکر میکنم شما پخش کردین کشور ایران گلگلاب گفتن و مولوک زرابی هم اولی خانندشون بودن بعد از اون کلون رو وزیری خوندن البته من سعی کردم فقط سرود و گفته هاشو زنده نگه دارم خودمون که هیچ وقت نمیتونم قابل مقایست کنم با هیچ کدوم از این ها البته از شما کشور ایران که این سیدی رو خوندید غیر از این سیدی در حال تعلیه دارین شما؟ دو تا شعر دیگه قراری که برای من بگن که شاعر دارن کار میکنن در ونکوور فقط در مورد ایران میخونم کشور ایران از شما در برنامه امروز پخش خواهیم کرد و منتظر شنیدن شعر هستید لطفنی <تصفيق> یک نوشته ای هست از ماهرخ پور زینال که به صورت دکلمه هست براتون میخونم امیدوارم که دوست داشته باشید اسکندر حمله کرد، مغول تاخت، افغان فتنه کرد. تازیان با آتش کشاندن و بیگانگان عرصه تاخت و تاز خود قرار دادند. ولی ایران همچنان ایران باقی ماند، استوار و پایدار، زیباست. عظمت ایران را از زبان ایران در شعری توسط ماه رخ پور زینال بشنوید. من ایرانم، من آن اوروم شیر بیشه های دور دستم من آن آتش‌پشان سربدامانم من آن گرینده ابر بیخوار بیکرانم من آن خورشید بیمار درخشانم من آن طوفان خاموشم که خونت هیبتم جوشد من آن شعر بلند شاعر گمنام تاریخم من آن سیمرغ کوه سارم که زال از شیر بن من نوشد من آن آتشکه پیوست سوزانم من آن پردیس بی دوزخ من آن گردونه مهرم من آن جهواره رستم من آن پیمانه حافظ من آن فرهاد شیرینم من آن فریاد خیامم من آن پاکم که از هر ننگ بی رنگم من آن دریای بی پیاور پر موجم من آن دورار زوی هر ابر مردم من آن افسانه خضرم که دارم عمر جاودان من آن رازم که در جرفای هر اندیش معوایم من آن زرین زنجیرم به ایوان انوشروان من اون عشقم که در اعماغ هر دل آشیان دارد اگر دزدیکم این جوید وگر بیگانه آشوبد من اون خشمم که می توفم من اون رادم که می گررم من اون مرز ستم تای گهرخیزم من اون خاک عبیرامیز و مشک آسای بیتایم من اون شهر امیدم سرزمین مهر تابانم manon nam et langizam man iranam man iranam تشکر از سرکار خانوم پروانه که زحمت کشیدن شعر قشنگ و زیبایی را برای شنواندیکان رادیا البرز مطرح کردم یاد آوره می کنم که سرکار خانوم پروانه میمان خانوم حوری علیزاده هستن خانوم حوری علیزاده هم در استودیو رادیا البرز زحمت کشیدن قدم رنجه فرمودن تشریف آوردن به خانوم حوری علیزاده هم سلام و صبح خیر میگیم سلام و صبح شما بخیر امیدوارم که هر جای که هستین خوب و سلامت باشین آقا مصطفی فامیلی من علی دوست علی زاده فامیلی شوهرمه منم خوشحال هستم که در خدمت شما هستم و پهوانی دوست من که از کانادا تشریف آوردن دوست اومدیم اینجا که به سبب این شعری که داشتن برای شنوندگان ردی آلبرز بخونن و امیدوارم که خوشتون اومده باشه من که خیلی لذت می‌برم از شهروند پروانه خانم علی دوستی شما می‌دارم میزبان خوبی برای سرکار خانم پروانه باشید در شهر آوست من سعی خودم رو خواهم کرد که به هر حال تا اونجایی که می‌تونم از دستم بر بیاد خوششون فراهم کنم و بهشون خوش بگذره من تشکر می‌کنم از شما که به استودیو را در ورش تشریف آوردید و همچنین خانم پروانه که در استودیو حضور دارند. خواهش می‌کنم روز خوبی داشته باشید. روز در استودیوی رادیو البورج یکی از هنرمندان هموطن ما از کانادا به اهوس تشریف آوردند سر کار خانم پروانه و محبت کردند به استودیو رادیو البورج آمدند. ما ضمن سلام و صبح بخیر حضور ایشان ابتدا از شما می‌خايم که یه سلام علیکم با شما عزیزان شنونده داشته باشه. با سلام خدمت همه ایرانیان عزیز شهر آگوست. امیدوارم که خوب و خوش باشین و موفق. چون موفقیت تمام ایرانیان آرزوی من است. و من از ونکوور یه دو روزی از اومدم و دوستان ازم خواستان که به رادیو بیام. جایی وسیع خوشبخته ایست که در کنار شما باشند من به شما خوش آمد میگرم به شهر آهوز در دانمارک امیدوارم در این مدتی اقامتی خالی. که دارین به شما خوش بگذاره خالی. قبل از این که شعرتون رو محبت کنین بخونین خواستم از شما سآل کنم که چند وقت فعالیت هنری در کانادا داری؟ اصلش تقریبا شیش سال پیش استاد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 شاعر دارن کار میکنن در ونکوور فقط در مورد ایران میخونن کشور ایران از شما در برنامه امروز پخش خواهیم کرد و منتظر شنیدن شعر هست. لطفاً نیک نوشته ای هست از ماهرق پور زینان که به صورت دکلمه هست براتون میخونم امیدوارم که دوست داشته باشید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 من آن آروم شیر بیشه های دور دستم من آن آتشپشان سر بدامانم من آن گرینده ابر بی خبار بی کرانم من آن خورشید بیمار درخشانم من آن طوفان خاموشم که خون از هیبتم جوشد من آن شعر بلند شاعر گمنام تاریخم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 من آن عشقم که در اعماق هر دل آشیان دارد اگر دزدی کمین جوید و اگر بیگانه آشوبد من آن خشمم که میتوفم من آن رعدم که میغرم من آن مرض ستم تای گوهر خیزم منم خاک عبیرامیز و مشک آسای بیتایم من آن شهر امیدم سرزمین مهرتابانم Man on nom dillengizem, man iranem, man iranem.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 سلام و صبح شما بخیر امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و سلامت بشین آقا مصطفی فاملی من علی دوسته علی زاده فاملی شوهرمه <تص <RPG> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خیرم منم خوشحال هستم که در خدمت شما هستم و پهوانی دوست من که از کانادا پشیف آوردن آواندیم اینجا که بسته به این شعری که داشتن برای شنوندگان راژیال بورس بخونن و امیدوارم که خوششون اومده باشه من که خیلی لذت می‌برم از شهروندن پروانه خانم علی دوستی شما می‌دارم میزبان خوبی برای سرکار خانم پروانه باشید در شهر آووس من سعی خودم رو خواهم کرد که به هر حال تا اونجایی که می‌تونم از دستم بر بیاد خوششون خاطر کنم و بهشون خوشبخت سرم من تشکر می‌کنم از شما که به استودیو را در باز تشریف آوردید و همچنین خانم پروانه که در استودیو حضور داره. خوش خوش پروانه روز خوبی داشته باشین. با تشکر از همگی شما شنوندگان که تا این لحظه با ما همراه بودید و با تشکر از خانم پروانه که میهمان برنامه امروز ما هستند و همچنین سرکار خانم علی دوستی پرانیتز باز خانمه <تصفح> علیزا دید <تصفح> و همچنین تشکر میکنم از همکار نازمین ما خانمه فیروزه برنامه فردا ما از ساعت هشت بامده شروع میشه و تا یازده ادامه خواهد داشت شماره تلفون ما 695-393 آدرس الکترونیکی ما radioalborz.hotmail.com و سایت انترنتی ما www.iraninfo یک کلمه از نقطه d.com قبل از این که با همه این شما عزیزان خداوزی کنم تا فردا ساعت هشته بامداد از خانم پروانه میخواییم که ضمن خوندن اون شعرشون و ما همچنین دو تشکر دوباره داریم از ایشون که بزوری در استودیو راژیالباز داشتن در خدمت شما از این منم خیلی تشکر می کنم که اینجا با شما بودم و این شعری که می خوام بخونم از عسایه هست و در تنهایی خیلی اینو خوندم با احساس قشنگی به این شعر دارم و دوست داشتم که اینو با شما هم شریک بشم امیدوارم که دوست داشته باشین و در ازایم خیلی مت شکرم که منو اینجا داشتین با خودتون و با هم دوستان خداحافظی می کنم بعد این شعر رو می خونم امیدوارم در باز در آینده اینجا باشم چون داره به ام خوش میگذرم همزمانی <تصفيق> <تصفيق> که شما شعر رو میخونین ترانه کشور ایران از صدای خود شما هم زیر شعر شما پخش میشه خیلی مجرد ارقبان ارقبان شاخه همخون جدا مانده من آسمانه تو چه رنگ است امروز آفدابی سوا آفدابی سوا یا گرفته است هنوز من در این گوشه که از دنیا بیرون است آسمانی به سرم نیست از بهاران خبرم نیست آن چه میبینم دیوار است آخ این سخت سیاه آن چنان نزدیک است که چو پر میگشد از سین نفس نفسم را بر میگرداند ره چنان بسته که پرواز میگه در همین یک قدمی میماند کورسوی ذکراق رنجور قص پرداز شب ظلمانی است نفسم می‌گیرد که هوا هم اینجا زندان است هر چه با من اینجاست رنگ رخ باخته است آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخم نینداخته است من در این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمعی خاموش شده یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد ارغبانم آنجاز، ارغبانم تنهاست ارغبانم دارد می گرید چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد ارغبن این چرازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افساید ارغبن پنجه‌ی خونی زمین دامن سو بی‌گیر با سواران خرامنده خوشیق بپرس کی پر این دره غم می‌گذرند ارغبن خوشی خون بان دادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر قلقله میآغازند چون گل رنگی مرو بر سر دست بگیر به تماشاگه پرواز ببر اوه بشتاب که هم پروازان میگران غم هم پروازند ارغوان می بی رنگ بیرنگ گلگون بهار تو برافراشته باش شیر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش تو بخوان نغمه ناخوانده من ارغوان شاخه هم خون جدا مانده من تشکر میکنم از شما امیدوانم بار دیگر در استویدو رو دیارو شما در شیب گارین و گفتگویی داشته باشیم خواهش میکنم خیلی متشکر از شما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 برنامه فردا ما از ساعت هشت بامداد شروع میشه و تا یازده ادامه خواهد داشت شماره تلفن ما شهست نووده خش نووده سه نووده سه آدرس الکترونیکی ما راژیوالبورز ات هات میل دات کام و سایت انترنتی ما ست دبلیو نقطه ایران اینفو یک کلمه از نقطه دی کن قبل از اینکه با همه شما عزیزان خداوزی کنم تا فردا ساعت هشت بامداد از خانم پروانه میخوایم که از من خوندن اون شعرشون و ما همچنین دو تشکر دوباره داریم از ایشون که حضوری در استودیو رادیو الواز داشتن در خدمت شما هستم منم خیلی تشکر می‌کنم که اینجا با شما بودم و این شعری که می‌خوام بخونم از حسایه هست و در تنهایی خیلی اینو خوندم با احساس قشنگی به این شعر دارم و دوست داشتم که اینو با شما هم شریک بشم امیدوارم که دوست داشته باشیم و از این خیلی متشکرم که منو اینجا داشتین با خودتون و با همه دوستان خداحافظی می‌کنم بعد این شعر رو می‌خونم امیدوارم باز در آینده اینجا باشم چون داره بهم خوش می‌گذره هر <صفح> <سؤال> زمانی که شما شعر رو می‌خونید ترانه کشور ایران از صدای خود شما هم زیر شعر شما پخش میشه <تصحان> خیلی متشکرم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 آن چنان نزدیکه است که چو پر می کشد از سین نفس نفسم را بر می گرداند ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی می ماند کرسوی ز چراقی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است نفسم می گیرد که هوا هم اینجا زندانی است هرچه با من اینجاست رنگ روخ باخته است آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخم نینداخته است اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمعی خاموش شده یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد ارغوانم آنجاست ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید چون دل من که چنین خونالود هردم از دیده فرو می ریزد ارغوان این چرا زیست که هر بار بهار با ازای دل ما می آید که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است و این چنین برجگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید ارقوان پنجه خونین زمین دامن صوب بگیر و سواران خرامنده خرشید بپرس کی بر این در ریقم می گذرند ارقوان خوش خون باندادن که کبوترها بر لب پنجره باز سهر قلقله می آغازن تو اونی کول رنگی مارو بر سر دست بگیر به تماشاگه پرواز ببر آه بشتاب که هم پروازان نگران غم هم پروازند ارغبان بی‌رنگ بی‌رنگ گلگون بهار تو برافراشته باش شیر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش تو بخوان نغمی ناخانده من ارغوان شاخ همخون جدا مانده من خیلی تشکر میکنم از شما میدوانم بار دیگر در استویدو رو دیاربور شما در شیب گارین و کفتگوی داشته باشین خواهش میکنم خیلی متشکر از شما <تصفيق>